اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انکه حمید و مجید برادرهای محترم هر کس حقی داره سر انسان و سر یک مسلمان قرآن حقوق بسیار زیاد داره از این خاطر امروز به این سر هایی که قرآن داره مثلا شما ببیند روزانه بگیم مادر ما سر ما حق داره بازار ما سرما حق داره این حقوق بشر است این حقوق انسان هست. است متوجه هستی ما در باری حقوق بشر حقوق انسان حقوق طفل سر کل ازی بحث میکنیم لاکی بی ببینیم که حقوق قرآن چیست؟ و ما منیسی یک مسلمان قرآن بالای ما چی حق داره اگر این حق ها را ما شما بفهمیم حق قرآن ادا میکنیم و اگر این حق عدا نکنیم و نفامیم باز چی میشه بازی شریف است که وقال الرسول یا رب این قوم اتخذو هاز القرآن محجور پیغمبر شهادت که یا الهی یا الهی سیگه وقال الرسول یا رب ای پروردگار من این قومی قوم من اتخذو گرفتن هاز این قرآن از قرآن هجرت کردن ترک کردن قرآن پوشای زیاد دادن سه گرین مشکلی هست در روز قیامت اتونه شد که ما در قفص اتهام قرار بگیریم و کسی که سر ما مدعی هست قرآن باشه و شاهد رسول الله باشه و بگوید که این مردم قرآن از قرآن هجرت کردن چه قسم قرآن هجرت کردن؟ حق قرآن نفهمیدن. میدن به که حق قرآن ادا بکنن بر اکس قرآن به چیزهای دیگه استفاده کردن اگه حق یکس نفهمی مثلا اروپا چرا مادر و مادر پدر خودن میبرند در اتاق سالمندان پیرخانه جور کردن مجرد که 50 سالش 60 ساله شد و راه اتاق سالمندان حقش را نمیفهمن مادر چی حق داره پدر چی حق داره وقتی که بچه جوان شد دید که اونجا کته همسر خود او خانه هست میبینه که پدرش رو توخ میکنه اون سالفه ناقص سر من خراب می‌کنه يلا فادر ماي کم ویت می مادر کم ویت می بوس می وير ماي سن می تو بي او فکر می‌کنم که البته نمیبرن نایس کریم خوردن بازو براش پیگ گفت والله چی قشید بود باز او کم کم او دیگه سرد موتور سوار میشه راستاً میبرنش تا شارواله تایش میکنن اونجا که تا کرد باز اساسش نشست کمپیرستون ما شما مرستون داریم و فلانی داریم بازو سر دا در کمپیرستون باز اونجا سای در کمپیرخانه خانه و سالمندان باز اونجا مادرم همونجا می باشه و باز پدرم همونجا می باشه و باز اولادش در نیست فکر خدا نگرفته تا کیویچاره مریض است و درد داره و مشکل داره بازی میموره باز میموره سای با اون نفرهای شهاروالی شما خودید یعنی نفرای شهاروالی و پرستارا و گپاک هست بازی ها در نیست که مریض بود یکه میګاره پایم درت میکنه باز میه اغلا ختم میکنه برای کوم زود زد که امریکا شما صاحب بازی میبره بازی رو صاحب شوارواله میبره گور میکنه باز باد ازو او باز اولادش بچی شې دختر شش ماه باد باز میه باز سر قبر زوی یک دستگر گل گله میمانه ازی خاطر در شورای غربی فلسفه روز مادر همی هست. باز گفتم چون مادر ده کمپیل خانه رفته پدر اونجا رفته باز گفته طول سال یک روز روز مادر باشه که بازه 365 روز وقتی بچه ده اولاد در قصه مادر و پدر نشد بازه سال یک مرتبه باشه یک دستگل ببره ما از دیدگاه اسلامی نه روز مادر داریم نه روز پدر عزیز پدر هم در بدر هستیم عزیز مادر تمام روز دنگ دنگ هست و قال مقال هست و است و چطور است و چنان هست اینالو مجبور هستی و پدر وقتی که آمد شیش کمک کمک بشاریش ترش. چرا پدر جان خیلیت ه خب باز اگر که برایش دادی باز طبیعتش خوب میشه. از روز روز پدر است. از روز روز مادر است. دسته مادر ماچ میکنی در مریضیش. بسیاری کسا را سعی که مادرش ما خدا 80 کیلو بچرکش 45 کیلو. و بچرکش سیم وارست مادرش خوبه که اول صاحب پشت کرده منزل چهارم پیش دکتر بالا او ابرو میبر چه میکنی؟ باش که مادر رو ما به تداوی میکنیم. هر خب روز روز مادر است. در مریضیش خبر هستیم، در دردش خبر هستیم. در خانق ازای خوب مادر می مادر حجروان روان میکنن پدر حجروان روان میکنن بر پدر مادر خدمت میکنن پیش دکتر شفخانه کن ایناله ما و شما چی نقص داریم این خود نقص اروپایا بود اما نقص خدا بگیم ما و شما اینگه به در قسمت قرآن کردیم قرآن بردیم در کجا مانیم در قبرستان یه قرآن شریف در قبرستان باشه باز یک نفر یک چهارک شامل لندن رو پوش میکنن برید یک قرآن هفتاد پوش داره چرا 70 پوش کردین مرا کسی گفت این چه ای قرآن شریف چرا 70 پوش موند گفتم به خاطر ازی که تاک تو 70 پوشه واسه به خواندن نوبت نرسه تا یک پوشه واسه کنیم دیگه رواز کنیم دیگه رواز کنیم تا اگر رفتم که قرآن شریف است که واسه کردیم واسه که بالاخره سعی کردم که یک قرآن شریف که 50 صفحه اول نداره 50 صفحه هم از آخر اون رسای به 70 پوش کرده آهای قرآن بر زمین شده یا قرآن بگی ای نزهیم من خوب جوان در گردن اسم الله با اسم الله در تشناب میری تو زنکه تو مرد مسلمان بر خانمت اسم الله در گردنش انداختی و او که تزوید تشناب میری توهین نیست آیت الکرسی رو در تند تنداختی که تزوید تشناب میری توهین هست به احترامی است به احترامی هست در مقابل قرآن یا ما که بسیار دیندار هستم فقط یک کلمه که در باری سال کلم کردیم یک آیت قرآن را در اتاق کردیم نه قرآن برازی نیست قرآن کتاب زندگیست قرآن کتاب زندگیست باید از قرآن پرسان بکنید قرآن برما بگو چه قسم ازدواج کنم قرآن برما بگو چه خصم زندگی کنم قرآن برای ما بگو چی قسم ارتباط بادگره داشته باشم قرآن برای ما بگو اخلاقش چه خسم باشه از این خاطر وقتی که از بیبی عایشه بی صدیقه رضی الله و عنها وقتی که پرسان کردن که اخلاق پیغمبر چی بود گفت چطور بود گفت کان خلوقهو القرآن قرآن اخلاقش از این خاطر صحابه مبارک صحابه کرام قرآن متحرک در روی زمین بدن در زمان پیامبرم سه قسم قرآن بود سه قسم قرآن بود یکی قرآن که میخوانند به نام کتاب مطلوع مصحف میگفتند متلو یا مقرو که تلاوت میشد و قرات میشد یک قرآن دیگه جهان است عالم هستی است کتاب باز الهی است افلا ينظرون در قرآن چه میخوان صحابه کرام افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت موضوع چی میگریم افلا ینظرون الابل کیف خلقت قد... جا... قاری صاحب بدین جایزه اول نمبر شد قاری چی مانا؟ نه فهمم معنای صدانا خوشاوازی مسابقه جایزه در تلاوت قرآن جایزه بسیار بلند در اخلاق قرآنی سفر صحابی کرام چی بایدن؟ ای قرآن می خاندن افلا ينظرون الیبل كيف خلقت و الی السماء كيف رفعت و الی الجبال كيف نصبت. وقتی کرا می خاندن بازم افتار ای سبحان الله افلا ينظرون الیبل بهن پیش اگویتر نار برین کس ک هیوان شنال سر میره بوزو باشمیش شطور این صفتا داره این صفتا داره این صفت, ای صفت داره یک مفسر 18 صفحه درباره چیز میگه تحقیق کرده بود حواسه شطور افلا یان غرونا ال البل کیف خلقت لو انسان سایکو و خالق عزیزی شطور دگاه بینیش راست است از شطور بینیش خطجا است این چرا قرآن میگه نفران به زره نه به الابل كيف خلقا. خاطر از این خلق شده که در صحرا دیگه چیزا زندگی کرده نمیتونه. شطور بسیار خوب نرمال میره. هر قدر شمالک به ما تو گدا شمال ببینیم، شمال دامبینی ما میذاره. مجبور فجا خودمون کن میریم. شطور این شمال نیست. چون واس میره. زیر سینش شطور تیار بالشتک ساختگی. بالشتکای آنتی گرمی. است. قرار در سر درجه حرارت که هر قدر تیز باشه در سر قرار استی نگه خدا میدونه خرر فشقه و میکنه خبر آب نیست بسیار تحقیق کنم سر شطان حتی اگر حادثه را من خانده والله به عالم چقدر صحب داره میگه خالد ابن بلید رضی الله تعالی عنه سفح سالار اسلام بود برزی آمدن گفتن تو جنرال استی ما میخواییم که از اینمی منطقه جزیره بری مو طرف قوات های جهادی برن تو جندرال هستی کماندان عمومی هستیم مشکل تان گفت چیست؟ گفت مشکلی هست که ما میخواییم از این منطقه به این انطقه بریم و از این منطقه وقتی که در فاصله هست 15 روز آبی که ما میگیریم از دو روز زیاد نمیشه سه روز پس ما این فاصله بیس روزه را چطور تایی بکنیم؟ فاصله بیس روزه را چه قسم تایی بکنیم؟ خالد ابن ولید عقیده داشت به قرآن و باور داشت به با قرآن ما به قرآن عقیده داریم لکن باور نداریم عقیده داریم که قرآن کلام خداست اما باور نداریم که هر مشکل ما را قرآن میت جواب بده. از این خاطر ما وقتی که مشکل داشتیم، که قرآن مشوره نمی کنیم. می که هر کسی دیگه مشوره می کنیم. اما اونم میفهمه که ما باور داریم که قرآن جوابگوی هر مشکل است. پس من این مشکل دارم، باش کرم. گف خب چطور کنیم؟ خواتا رو ببریم. حالت بیماریت چطوره؟ ما فکر می کنیم ان و چون باور با قرآن داشت آمد قرآن باز کرد اوز بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم خانده میره خانده میره فکر کرده میره ده ایک میرسه میره سکه افلا یانظرون نظرون کیف خول قد چی؟ چرا؟ افلا رو خالد چرا فکر نمی کنی؟ سنو شطر؟ چخصم خلق شده خالد فعلا نفر پیدا میکنه مي میگه یک نفر متخصص و ترنه را بخواهیم بر ما که به در شطور معلومات بده برش میگه نفرم میگه شطور در شطور گپ بزن میگه صاحب شطور این قسم داره بینی ای این تو از گوشی قسم از خود دگه چی صفت داره دگه چی صفت داره گفت صاحب شطور عادت داره که وختت کسره که سوار شوی از همج حرکت کونی خر میگه که نه سر شازینجا سوار شون میگه په دیوار تا میکنه اونجا که رسید باز که تا نشودی باز که یک اخ گفتیش باس رقای سر میکنه شطور چی داره از همج حرکت کونی تو میبریش تا د افغانانو فکر میگم هر جلابات میبره هیچ د قصه ش نیست د گرفته وقتی که د پل چلخی که د شرخ نکدنو گوفي یک خاصیت دیگه شطور داره و او چی است گوفي خاصیت شطور است که شطور عادت که اگر برش آب بتی مثلا یک هفته آب نتیش وقتی که این دفعه بودش سر چشمه آب یک مای خدا با ذخیره میکنه در داخل بدنش یک بلار کلان از ذخیره آب که حق یک مره 200 لیتر آب ذخیره میکنه 100 لیتر یکونین 100 لیتر یا دو 100 لیتر بم حساب از کجا میکنید خالص که خلاص جواب یافت جواب یافت امرکرد کماندوهای اسلام کماندوهای اسلام مجاهدین مسلمان یک وقت کتروس ها که جهاد میکردن برق میخوردن سه شب و سه روز خواهیش میپندید برق در ها میخورد تغذیه میشد جهاد میکرد کتروس روزی که مجاهد کباب خورد پنچه روزی که در موتر چل هزار متردد چلوزه سنجه که پنجازسازی انسان است قبض خراب میکنه مجاهدین کماندوهای اسلام یا را گفت شترای رو آماده کنین شترار رو آماده کردم 200 300 شتر گرفتن و گفت یار یک یا هفته اون نتین یک هفته شترار ندادن یک هفته بعد سر چشمه آب شتره بودن شترار کدامش حق مای مایه خود خورد ت کنیم گف گفت حال ازسی روز زیات ماو او ندارین وت شد که بردسیی روز که تی شد مردم اودم که ما نگه بریم مبون نیست چپک این شدهره سب شد رو چپک کردند دو تا شدهره چهارصدی طرف از ششکم می کشیددن یه گلاس بخورید باز کنین گوش رو کباب کنین برین با دو سر باز که رفتن باز یک شو باز بالاخره چند تا شطره.